زندگی ایدئال جذابیت قد بلندی و خوشدی اش با پدر شدنش فقط زره کمتر از قبل شده بود. حتی به نظر می رسید نسبت به وقتی که در خانه نورارا را زد سرحالتر باشد. مثل همان شب لباس ورزش به تن داشت. هرچند که در این زندگی لباسهایش بهتر و گران قیمتتر به نظر می رسیدند. یک جور دستبند سلامت هوشمند هم به بازویش وصل بود. لبخند میزد و دو ریوان قهوه توی دستهایش بود که یکیشان برای نورا بود نورا یک لحظه به این فکر افتاد که از آن قهوه اول به بعد چند بار دیگر با همدیگر قهوه نوشیده بودند اوه ممنون اش پرسید وای نه نور دیشب اینجا خوابیدی؟ نور؟ بیشترش اره میخواستم برگردم روی تختمون ولی مالی ترسیده بود و باید آرومش میکردم بعدش هم دیگه خیلی خسته بودم آخه متاسفم صداشو نشنیدم واقعا به نظر می آمد داره ناراحت شده است احتمالا تقصیر من بود دیروز قبل از رفتن سر کار چند تا خرسه یوتیوب نشونش دادم اشکالی نداره بگذریم افلاتون رو بردم گردوندم تا ظهر نمیرم بیمارستان از اون روزاست که تا دیر وقت کار میکنم. هنوزم هم داری امروز بری کتاب خونه؟ میدونی چیه؟ احتمالاً امروز بیخیالش بشم. خیلی خوب. سبونه مالی رو دادم و میرسونمش مدرسه. نرا گفت. اگه امروز خیلی کار داری من میتونم ببرمش. نه روز عادیه. تا الان یه اولی کسی صفرا و یه پانکراس دارم. آسونه. میخوام یک همان برم بودو هم. آره، باشه، البته، واسه مسابقه نیمه ماراتوله یک شنبه چی؟ نورا گفت. هیچی، مهم نیست، صرفاً به خاطر خابیدن روی زمین یکم ذهنم ها است. اشکالی نداره، خب، بگذریم خواهرم زنگ زد. گفته، ازش خواستن تصویرگری تقویم سالانه ی کیو رو انجام بده. کلی گولوگیا هست، خیلی خوشحاله. اش، لبخند زد. به نظر میرسید برای خواهرش که نورا هرگز او را ندیده بود واقعا خوشحال است نورا میخواست از او به خاطر اینکه آنقدر خوب هنگام مرگ گرربش به او کمک کرد تشکر کند اما مشخصاً نمی‌توانست چیزی بگوید بنابراین فقط گفت ممنون واسه چی؟ کلد واسه همه چیز آها، خوب باشه خوب ممنون سریتگانداد خواهش میکنم. خوب خب دیگه وقتشه که برم به دویدنم برسم قهوهش را سر کشید و بعد بیرون رفت نورا نگاهی به اطراف اتاق انداخت و ذره زر ذره اطلاعاتی را که می توانست کسب کرد تک تک عروسک های بغلی و کتاب ها و پرییس های برق گویی همه اینها بخشی از چیزدان زندگیش بودند یک ساعت بعد اش داشت مالی جلوی محت کودکش پیاده میکرد. نورا هم سرگرم کارهای همیشگیش بود. ایمیل ها و شبکه های را بررسی می‌کرد. در این زندگی فعالیت چندانی در شبکه های اجتماعی نداشت که این خود همیشه نشانگ خوبی بود. اما ایمیل های بسیار زیادی داشت. از همان ایمیل ها نتیجه گرفت که تدریس را موقتاً کنار نگذاشته بلکه به کل از تدریس کنارگیری کرده است. فرصتی مطالعاتی گرفته است تا کتابی درباره هنری دیوید سورو و ارتباطش با جنبش‌های محیط زیستی نوین بنویسد اواخر همان سال هم قرار است با پول بورسیه تحقیقاتی به شهر کنکورد در ایالت ماساچوست سفر و از دریاچه والدن دیدار کند همه چیز خیلی خوب به نظر می رسید. آنقدر خوب که دیگر تقریباً آزاردهنده شده بود زندگی خوب، با دختری خوب و مردی خوب، توی خانه خوب، در شهری خوب داشت. همه چیز زیادی خوب بود. در این زندگی می توانست تمام روز بنشیند و کتاب بخواند و تحقیق کند و در باریگ محبوب ترین فیلسوف عمرش بنویسد. به سگ گفت، باحال نیست؟ افلاتون با بیخیالی خمیازه کشید. سپس همانطور که سگ لابرادور از روی مبل گرم و نرم تماشایش می کرد در خانه راه افتاد تا نگاهی به قسمتهای مختلفش بیاندازد. اتاق نشیمنشان بزرگ بود، پاهای نورا در فرش نرم اتاق نشیمن فرو می رفتند. های کف سفیدرنگ، تلویزیون، شومینه، پیانوی الکتریکی، دو لپتاپ جدید که توی شارج بودند، یک صندوقه ماهونی که صفحه شطرنج ظریفی روی آن قرار داشت و قفسه‌هایی به دقت چیده شده یک کتاب. گیتاری زیبا در یک گوشه. نورا بیدرنگ مدلش را شناخت. گیتار الکتروآکوستیک به اسم فندر مالیبو به رنگ سرمه‌ای اطلسی. تا یه هفته آخر کاریش در تئوری ریسمان یکی از این گیتارها را فروخته بود. عکس‌های قاب شده دور تا دور اتاق نشیمن دیده می شدند. بچه بچه‌هایی که نورا نمی‌شناختشان با زنی شبیه به عش، حتما خواهرش بود. عکسی قدیمی از پدر و مادر مرحوم نورا در روز عروسیشان و عکس دیگری از عروسی نورا و عش، جو هم در پس‌زمینه عکس دیده میشد. یک عکس از افلاطون و عکس بچه‌ای که احتمالا مالی بود. دورا نگاهی به کتاب‌ها انداخت. چند کتابچه راهنمای یوگا، اما نه آن کتابچه های دست دومی که در زندگی اصلیش داشت. چند کتاب پزشکی. دورا دو کتاب تاریخ فلسفه غرب اثر برتراند راسل و همچنین والدن هنری دیوید سورو را که از دوران دانشگاه داشت، در کتابخانه دید. کتاب آشنای اصول زمینشناسی هم بود. چند جلد از کتاب‌های سرو. کتاب جمهوری افلاتون و خاستگاه توتالیتاریسم هانا آریند که نورا در زندگی اصلیش هم آنها را داشت. اما ویراستالی کتاب های قدیمیش با اینها فرق می کرد. چند کتاب ظاهرا پرمایه از نویسندگان مختلف همچون جولیا کریستوبا و جودیس باتلر و چیما ماندا انگوزی آدیچی. کتاب زیادی هم درباره فلسفه شرقی داشت که قبلاً هیچ کدامشان را نخوانده بود. و حالا به این فکر می کرد که پیش از آن که دوباره بخواهد در کمبریج تدریس کند، راهی برای خواندن همهشان پیدا خواهد کرد یا نه. چند رمان دیکنز، حباب شیشه ای سیلویا پلات، چند کتاب علمی محبوب، چند کتاب موسیقی، چند راهنمای تربیت فرزند، کتاب طبیعت اثر رالف والدو امرسون و بهار خاموش نوشته ریچل کارسون، چند مقاله درباره تغییرات اقلیمی و کتاب بزرگ با جلد سخت به اسم رؤیای قطب، تخیل و آرزوها در مناطق شمالی. به ندرت پیش می‌آمد که این همه وقت پشت سر هم ابروهایش را بالا بیندازد. معلوم است که وقتی کارشناسی ارشد فلسفت را در دانشگاه کمبریج بخوانی و بعد فرصت مطالعاتی بگیری تا کتابی درباره فیلسوف محبوبت بنویسی باید هم زندگیت اینطور باشد به سگ گفت تحت تأثیر قرارت دادم اشکالی نداره اعتراف کن همچنین تعداد زیادی کتاب موسیقی روی همان هم باشته شده بود نورا لبخند زد وقتی دید بالاترین کتاب موسیقی همان کتاب سایمون و گارفانکری است که در روز دعوت اش از او برای قهوه خوردن آن را به او فروخته بود کتاب جلد سخت زیبا و براقی از عکس‌های مناظر اسپانیا روی میز قهوه و کتاب دیگری به نام دانشنامه گلوگیا روی مبل قرار داشت در قفسه مجلات هم آخرین شماره مجله نشنال جوگرافیک بود که روی جلدش تصویر سیاه چاله دیده شد. عکسی روی دیوار قاب گرفته شده بود. تصویر چاپ شده میرو از موزهی در بارسلونا. من و اش با همدیگه رفتیم بارسلونا افلتون؟ خودشان دوتا را تصور کرد که دست در دست همدیگر در خیابانهای گوتیک گوارتر قدم میزنند. و بعد وارد بار میشوند تا تپاس و ریوخا بخورند. روی دیوار روبروی کتابخانه یک آینه بود. آینه پهن با قابی سفید و تجمولاتی. نورا دیگر از تفاوت ظاهرش در زندگی‌های مختلف تعجب نمی‌کرد. دیگر تمام اندامها و ها و مدل‌های مورا تجربه کرده بود. در این زندگی کاملا دوست داشتنی به نظر می‌رسید. اگر خودش این زن را میدید دلش می‌خواست با او دوست شود. شخص توی آینه نه قهرمان المپیک بود و نه ستاره راک یا آکروبات باز سیرک آفتاب. بلکه فقط زنی بود که تا آنجا که میشد از ظاهر حد زد، به نظر می رسید زندگی خوبی دارد. بزرگ سالی که تا حدودی می دانست کیست و از زندگی چه میخواهد؟ موهایش کوتاه بود، اما نه خیلی زیاد. پوستش هم نسبت به زندگی اصلیش سالمتر به نظر می آمد. حالا یا به خاطر رژیم غذایی خوردن کمتر نوشیدنی و ورزش کردن و یا به خاطر تمام پاک کننده ها و مرتوب کننده هایی که در سرویس بهداشتی دیده بود و از همه چیزهایی که در زندگی اصلیش داشت گران قیمت تر بودند. به افلاتون گفت خب زندگی خوبیه نه؟ ظاهراً افلاتون با او موافق بود. دستجوی روحانی به دنبال ارتباطی امیغتر با جهان کشوی داروها را در آشپزخانه پیدا کرد و میان چسب زخمها، ها، مخصوص زانوی دونده ها، قرص ایبوبروفن، استامینوفن و ملتیویتامین ها را گشت اما هیچ قرص زده ندید شاید این زندگی است که میخواست شاید سرانجام زندگی را پیدا کرده که داخلش میماند زندگیی که انتخابش می کند. کتابی که دیگر به قفصه ها بر نمیگردد شاید میتونم اینجا باشم اندکی بعد زیر دوش حمام بدنش را به دنبال جای زخم یا نشانی دیگر گشت خالکوبی نداشت اما زخم چرا البته نه زخمی که خودش ایجاد کرده باشد در واقع زخمش به شکل خط افقی بلند و ظریفی زیر نافش بود و به نظر می با جراحی ایجاد شده باشد قبلا زخم جراحی سزاریان را دیده بود حالا هم در حالی که انگشت شستش را روی آن می کشید، به این فکر کرد که حتی اگر در این زندگی بماند، کمی دیرتر از آنچه باید سراغش آمده است اشک که مالی را به مدرسه رسانده بود به خانه برگشت نورا اجولان خودش را پوشاند تا اش برهنه نبیندش. با هم دیگر صبحانه خوردند. پشت میزه هاش نشستند و اخبار روز را در گوشی هایشان خاندند و نان توست خمیر ترش خوردند. در تمام این مدت نمونه بی نقصی از دستاورد ازدواج به نظر می رسیدند. بعد هم اش به بیمارستان رفت و نورا در خانه ماند تا تمام روزش را صرف تحقیق درباره سرو کند. تا آن روز به طرز و 42,729 کلمه از کتابش را نوشته بود که همه را خواند، بعد هم نشست و کمی دیگر نان تست خورد تا برسد و دنبال مالی برود. مالی میخواست مثل همیشه به پارک برود و به اردک ها غذا بدهد. بنابراین نورا با پنهان کردن این حقیقت که برای پیدا کردن راه از نقشه گوگل استفاده می او را به پارک برد. نورا آنقدر روی تاپولش داد که بازوهایش درد گرفتند. با او از سرسوره ها به پایین سرخورد و دنبالش در تونل های فلزی بزرگ خزید و جلو رفت. بعد هم تانه های خوشک را از جعبهای پر از قلات برداشتند و برای اردک ها در دریا ریختند. پس از آن هر دو جلوی تلویزیون نشستند. بعد نورا غذای او را داد و برایش قصه قبل خواب خاند. تمام اینها پیش از آمدن اش به خانه بود بعد از اینکه اش آمد مردی در خانه را زد و سعی کرد داخل بیاید اما نورا در را روی صورتش بست نورا بله چرا با آدام اینطوری رفتار کردی چی فکر کنم می بدش اومد منظوری چیه؟ یه جوری رفتار کردی که انگار غریب است آهان نورا لبخند زد ببخشید. سالی که همساییم حتی با اون و هانا توی محله دریاچه چادر زدیم آره میدونم البته یه جوری رفتار کردی که انگار نمیخواستی بذاری بیاد داخل انگار مزاحم یا دزده واقعا در رو روی صورتش بستی فقط در رو بستم روی صورتش که نبود منظورم اینه که آره صورتش هم جوری در بود در عمل آره در رو روی صورتش بستم اما فقط نمیخواستم فکر کنه هر موقع دلش خواست میتونه بیاد داخل داشت شلنگمونو برمی گردوند آهان درسته خوب خیلی هم شلنگ لازم نداریم پلاستیک واسه سیاره زمین مزره حالت خوبه؟ چرا نباید خوب باشم؟ فقط نگرانت هم اما به طور معمول همه چیز خوب پیش می رفت. هر بار هم که نورا فکر می کرد شاید در کتابخانه نیمه شب از خواب بیدار شود، این طور نمی روز بعد از کلاس یوگا روی نیمکتی کنال رودخانه کم نشست و یکی از کتابهای سرو را بازخانی کرد. روز بعد مساحبه رایان بیلی را در برنامه تلویزیونی تماشا کرد که درباره میخانه آخر جاده حرف میزد. بعد هم گفت در و روحانی به دنبال ارتباطی تر با جهان است و نمیخواهد نگران برقراری روابط عاشقانه باشد. ایزی برایش چند عکس نهنگ فرستاد. بعد نورا با واتساپ با او تماس گرفت و گفت به تازگی در باریگ تصادفی وحشتناک در استرالیا شنیده است و ایزی را مجبور کرد قول بدهد که همیشه با احتیاط رانندگی خواهد کرد. را از اینکه میدید هیچ علاقه ای ندارد که بفهمد دن در این زندگی چه کار میکند خوشحال بود و احساس آرامش میکرد در عوض قدردان رابطش با عش بود یا در واقع اگر میخواست دقیق تر بگوید تصور میکرد که قدردان رابطش است چون اش مرد بسیار دوست داشتنی و خوبی بود و لحظات شاد و پرخنده و سرشار از عشق بسیاری را با هم میگذراندند. شیفت‌های اش در بیمارستان طولانی بودند. اما حتی وقتی هم بعد از یک روز تمام سر و کله زدن با خون و استرس و کیسه صفرا به خانه می آمد، زندگی کردن که دارش آسان بود، کمی هم عجیب رفتار می کرد. همیشه وقتی سگشان را در خیابان می‌گرداند، به پیر مردها و پیر زنها صبح خیر می گفت. آنها گاهی حتی نادیدهش می گرفتند. با آهنگ‌های رادیو میخواند عملا به نظر میرسید نیازی به خواب ندارد حتی شبهایی هم که فردایش در بیمارستان عمل جراحی داشت مشکلی با این نداشت که تا دیر موقع مراقب مالی باشد دوست داشت با حقایقی که میدانست، دل مالی را به هم بزند هر چهار روز یک بار دیواره مده عوض میشه چرک گوش در واقع یه جور عرقه موجوداتی به اسم کنه توی مجهات زندگی میکنند آشق رفتارهای نام بود. یکبار کلار دریاچه اردکا در نخستین شنبه ماه آن هم زمانی که مالی صداش را میشنید مشتاقانه برای غریبه ای توضیح داد که آلت جنسی اردک نر شبیه دربازکن است. شبهایی که زود به خانه برمیگشت و می آشپزی کند دالت و پاستا با سس آرابیات های درست می کرد و دوست داشت در هر غذایی که میپخته یک حله کامل سیر بیاندازد. اما کاملا حق با مالی بود. مهارت موسیقایی اش کوچکترین شباهتی به مهارت‌های هنری دیگرش نداشت. در واقع وقتی آهنگ آوای سکوت را با گیتارش زد و همزمان آن را خواند، نورا با عذاب وجدان بسیار در دل آرزو می‌کرد که کاش اش مثل عنوان آهنگ سکوت می‌کرد. به بیان دیگر اش آدم عجیب غریبی بود آدم عجیب غریبی که هر روز جان آدم ها را نجات میداد اما در هر صورت عجیب غریب بود که این خودش خوب بود نورا از آدم های عجیب غریب خوشش میآمد و حس میکرد خودش هم عجیب غریب است. و این کمکش میکرد با وضعیت اساسا غیر عادیش برای دوست داشتن شوهری که تازه با او آشنا شده بود راحت هر کنار بیاید. نورا همیشه دوباره و دوباره با خودش فکر می کرد، این زندگی خوبیه. بله، بچه داری سخت بود، اما مالی دست کم در طول روز دختری دوست داشتنی و آسان گیر بود. در واقع نورا، حتی ترجیح می داد مالی به جای مدرسه در خانه بماند، چون به این ترتیب کمی چالش به روز بی اتفاق و حوصله سربرش اضافه می شد. نه استرس روابط عاطفیش را داشت، نه استرس کار زیاد، و نه استرس پول، باید قدردان خیلی چیزها می بود. بعضی وقتها هم به ناچار دچار تردید می شود. همان حس آشنا را داشت که انگار در تئاتری بازی می کند. اما دیالوگ هایش را حفظ نبود. یک شب از اش پرسید. مشکلی پیش اومده؟ فقط اش پا لفخند مهربان و چشمان جدی و نافذش به او نگاه کرد. نمیدونم یادت که سالگرد من داره نزدیک می کنمم فیلمایی رو که قبلا دیدی ندیدی و برعکس یادت رفت دوچرخه داری یادت میره بشخاب با کجاست مدتیه که دمپ ای منو می پوشی یا از سمت منم میای توی تخت نورا کمی خشک از آنچه باید گفت چه حرفایی میزنی اش؟ احساس میکنم سه تا خرس دارن بازجویی میکنن فقط نگرانت هستم خوبم فقط میدونی توی تحقیقاتم گم شدم توی جنگل گم شدم. جنگل سرو، در آن لحظات فکر می کرد به کتابخانه نیمه شب برخواهد گشت بعضی وقتها یاد حرفهایی میافتاد که خانم علم در نخستین ملاقاتش از کتابخانه زده بود اگه واقعاً و عمیقان زندگی رو بخوای، نیازی نیست نگران باشی به محض اینکه به این نتیجه برسی اون زندگی رو واقعا میخوای. تمام چیزهایی که الان توی سرت هست از جمله کتابخونه نیمه شب، در نهایت به خاطره اون اونقدر محو و گنگ تبدیل میشن که انگار اصلا وجود نداشتند. که این فکر را به سر نورا میانداخت که اگر این همان زندگی مدل هزار است، چرا هنوز کتابخانه را فراموش نکرده است؟ فراموش کردنش چقدر طول میکشید؟ بعضی وقتها بدون هیچ دلیل اندکی احساس افسردگی میکرد. اما اصلا با احساس بدی که در زندگی اصلیش یا حتی خیلی از زندگی های دیگر داشت قابل مقایسه نبود. مثل این بود که سرماخوردگی ساده ای را در مغازه تئوری ریسمان از دست داد و یادش می آمد چقدر ناامید و تنها و بی میل به زندگی بود. متوجه می شد که حسه الانش حتی زره ای به آن موقع نزدیک نیست. هر شب با این فکر به خواب می رفت که دوباره در همین زندگی بیدار خواهد شد. چرا که در مجموع و با در نظر گرفتن همه چیز بهترین زندگی بود که می شناخت در واقع پس از مدتی اطمینانش از اینکه در همین زندگی خواهد ماند به ترس از این بدل شد که وقتی از خواب بیدار شود در این زندگی نباشد. با این حال هر شب در تختش خوابش میبرد و صبح در همان تخت از خواب بیدار میشد. بعضی وقتها هم روی فرش از خواب بیدار میشد اما این درد را با اش مشترک بود. مالی هم دیگر نیمه شبها نسبت به قبل کمتر از خواب بیدار میشد البته بعضی وقتها اتفاقهای معذب کنندهی رخ می داد. لورا هرگز نمیدانست هر کاری را چطور انجام بدهد یا وسایل خانه کجا گند. اش هم بعضی وقتها می گفت شاید بهتر باشد از دکتر وقت بگیرد. اوایل لورا سعی می کرد شبها با او رابطهی برقرار نکند. اما سرانجام یک شب انجام شد و بعدش نورا به خاطر اینکه در زندگی دروغیم زندگی می دچار عذاب وجدان شد. پس از رابطهشان در تاریکی دراز کشیده و ساکت بودند، اما نورا میدانست که باید موضوع را به زبان بیاورد. برد. دست کم باید امتحان می کرد. گفت، اش، بله، به نظریه جهانهای موازی، عقیده داری؟ نورا در تاریکی میتوانست ببیند که لبخندی به لب اش آمد از آن موضوعاتی بود که بحث را دربارهشان دوست داشت آره فکر کنم منم همینطور. طور منظورم اینه که بحث علمی دیگه مگه نه اینطوری نیست که بگیم یه فیزیکدان مسخره بازی در آورده و گفته جهان های با باحالن بیاین یه نظریه درباره شون بسازیم اش موافقت کرد آره علم به هر چیزی که زیادی باحال یا علمی تخیلی به نظر برسه بی اعتماد. دانشمنده ها اساسا ادمهای شکاکین. دقیقاً. با وجود این فیزیکدان ها به جهان های موازی عقیده دارن. خب دیگه علمشون اونها رو به این نتیجه رسونده مگه نه؟ مکانیک کوانتوم و تئوری ریسمان همه به این نتیجه ختم میشن که جهان های زیادی وجود دارن. خیلی خیلی زیاد. خوب. اگه بهت بگم که من زندگی های رو توی اون جهان ها دیدم و این یکی رو انتخاب کردم چی میگی؟ فکر میکنم دیوونه شدی، ولی در هر صورت دوستت دارم خب واقعا گفتم، زندگی های زیادی رو تجربه کردم اش لبخند زد عالیه، زندگی هم بوده که توش دوباره منو بوس کنی توی یکی از زندگیام تو جسد گربم رو دفن کردی اش خندید، باحال بود نور، همین تو دوست دارم، با اسمشی حس کنم، خودم معمولیم. اینگونه گونه گفته گویشان تمام شد. نورا دریافت که حتی اگر در زندگی تا جایی که می تواند هم راستگو باشد، مردم فقط آن حقیقتی را می بینند که با واقعیت خودشان بیشترین همخانی را داشته باشد. همانطور که سرو می گفته، آنچه که نگاهش می کنی اهمیت ندارد. آنچه که میبینی مهم است. اش هم فقط همان نورایی را میدید که عاشقش شده و با او ازدواج کرده است. به همین منوال نورا داشت به همان نورا تبدیل میشد.